بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض والوصايا كتاب بيو بفضل خدا تمام شود رسيدين به كتاب فرائض فرائض علميس كأونجا انسان شيوه تقسيمه ارصو به مستحقينش ياد مگيره وازون جايكه گروه از المراس بران از طريق فريزه ذو فروز هستند به این علم فرائز گفته میشه فریزه فراز جمع فریزه هست اون فرز ذو ها اون اشخاصی رو میگن که سهمیه مشخص شده ای دارن دارند در کتاب الله چون برخی سهمیه مشخص نیست و بشون اصبه گفته میشه خب پس کتاب فرائز و وصایه وصایه هم جمع وصیت هست و الوارثون من الرجال عشارتون وارثان مرد ده می باشد یک الابن یک پسر و ابن الابن و انسفل دو پسر پسر و هرچند پاین تر بره یعنی پسر پسر پسر و هرچه بره والاب الاب سه پدر والجد وان و چار پدر بزرگ و هرچی بالا بره یعنی پدر پدر بزرگ پدر پدر پدرش اینجوری. و اخ برادر و ابن الاخی و انتراخ و پسر برادر و اگر که دور باشد مانند پسر پسر برادر پس پسر برادر و انتراخ و هرچند دور باشد ماننده پسر پسر برادر این ترجمه ای است که دیبول بقا کرده در کتابش تراخاره یعنی بعداً مانند پسر پسر پسر ولعم هفت امو هشت و ابن العم و انت بعداً پسر آمو و اگر چه دور باشه یعنی مثلا آموی داریم که برادر پدر یا اموی داریم که برادر پدر بزرگ اینو میگن تباعت به این شکل پس بس امو، پسر امو، و اگر چه دور باشد اصلاً پسر برادر پدر بزرگ اینو میگن پسر امو دور والزوج شوهر والمولا المعتق مولای معتق یعنی آزاد کننده شخصی غلام بوده آزاد کننده ای داشته اون آزاد کرده کسی بوده دیگه خریده و آزادش کرده خب این آزاد کننده اگر اون آزاد شده میراث بر نداشته باشه این آزاد کننده ازش ارث میبره و الوارثتو خب اینجا ما ده گروه از مردان رو نام بردیم مثلا یکی اومد یک شخصی همه اینا رو داشت مثلا میگم آی همه ارث میبرن؟ نه میگه اگر تمام مردان یک جا جمع بشن فقط سه نفر ارث میبرن پدر و پسر و شوهر پدر و پسر و شوهر خب اینا رو خواهیم آموخت اینا ارث میبرن ولی معنیش نیست که در هر حال ارث میبرن میراث بر هر هستن. اما اولویت بندی هست اصلا شخصی مرده پسر داره و امو اینجا دیگه پسر ارس میبره هم پسر ارس برنده هست هم امو از وارسون رجال هست ولی این و اولویت مندی رو در بحث حج و بقیه مسائل خواهیم آمو ولوارساتو من النساء سبعون وارسان زن هفتا میواشن یک البنتو دختر دو و بنتو الابن دختر پسر البته اینا رو در بحث شد که اونجا بیان توضیح خواهیم داد. پس یک دختر دو و بنت ول دختر پسر سه وال ام، مادر، وال جدّا چار مادر بزرگ، پنج وال اختو خاور، شش وال زوجتو همسر، هفت وال موالات المعتقه آزاد کننده ی اگر یک زنی آزاد کننده باشه یه زنی کسی رو بخره و آزاد بکنه میراث بر نداشته باشه این مولات معتقی ازش ارث میبره این آزاد کننده از اون عرص میبره بس ده تا مرد داشتیم و هفت تا زن اینا میراست بر هستند ولی اینا گفتیم میراست برند در هر حال عرص میبرن نه دیگه بعد قبلا مختصر اشاره کردیم من شخصی این رو جلوتر هم مفصلتر میشند از جای کار. بریم جلوتر. فصلون. فصل بعدی من یارث و علات دوام و من لائه ریث. افرادی که همیشه ارث میبرند و افرادی که ارث نمیبرند. و من لا یست بحال به و افرادی که در هیچ حال ساقط نمیشوند پنج داستن. افرادی که در هیچ حال ساقت نمیشوند پنج داستن. منظور از در هیچ حال اون موانع ارث نا. مثلا ما موانع ارس داشتیم قتل یکی مورس بکشه ارس نمیبره مثلا پسری بیاد پدرش رو بکشه ارس نمیبره منظور اون موانع ارس نه اینجا اون افرادی که در هیچ حال ساقط نمیشوند منظور زمانی که تمام میراث برای با هم جمع بشن برای دیگه نمیتونن این پنج گروه رو ساقط بکنند منظور این جمله اینه وگر نه اونو توضیح خواهد داد پس افرادی هستند که از ارز ساقط نمیشند ولی به دلیل تضاهم افراد از ارز ساقط نمیشند یک شخصی هست تمام میراست بران اونجا جمع هستند تمام جمع باشن. اون از ارز ساقط نمیشه پسر دختر پدر مادر و اونایی که جلوتر میخونیم اینا از ارس ساقت نمیشن پس پنج گروه هستن که ار... کسی اونا رو ساقت نمی کند موانه فرق میکنه چون ما, مو... ما اسباب ارس داریم و ارث ارس این کتاب سراحتا نگفته ولی اشارتا اونا رو بیان کرده موانه سه ستا هستند یکی قتل، یعنی شخص کسی رو بکشه ازش ارس نمیبره یکی بردگی برده ارس نمیبره و کسی هم ازش ارس نمیبره چون چیزی نداره یکی اختلاف دینه مسلمان از کافر ارس نمیبره کافر از مسلمان ارس نمیبره بله اینجا که گفته ومن لایس به حالا خمسطول کسانی که از ارس در هیچ حل نمی نمیشوند پنج تا سه منظور این موانع اگر وجود داشت ساقت یعنی قتل و اختلاف دین و بردگی افراد دیگر نمیتونند از اینا رو از ارس کنند. شخصی مرده یک پسر داره پدر داره با برادر خب برادر اینجا از ساقت میشه ولی پدر و پسر نمیشه. چون این پدر و پسر از افرادی هستند که ساقت نمیشند یعنی میراس اونا رو نمیکنه. و موانع ارث همه رو میتونن ساقت کند یعنی قتل و بردگی و اختلاف دید پس اینجا منظور ما و من لایست به حال خمستون و اون افرادی که از ارس ساقط نمیشون در هیچ حال پنج تا حسن منظورمون این هست که کسی اونا رو محجوب نمی کنه کسی اونا رو ساقط نمی کنه یک و دو از زوجان زن و مرد زن و مرد از همیشه ارث میبرن؟ از ارس ساقت نمی کسی نمی تونه اونا رو ساقت کنه شخصی مورد یک زن داره دو پسر پسر نمیتونه اینجا زنشو زن شو زن مگی تو ساقت بکنه اما اگر زن و مرد اختلاف دین داشته باشد بله اصلا دیگه ارث نمیبرند اگر یکی از اون دیگری رو کشت ارث نمی بله پس پنج نفر هستن که کسی آنا رو ساقت نمیکنه. محجوب نمیشند ساقت نمیشنند از ارث یک دو شوهر و زن سه و چهار ال پدر و مادر پنج ولد الصل فرزند میت فرزند مستقیم میت نوه نا فرزند پس این پنج گروه از بردن ساقت نمیشن یعنی میراس بری دیگر اینا رو محجوب نمیکنه شوهر زن پدر، مادر و فرزند میت فرزند مستقیم میت این فرزند خودش ولد و این فرزند خودش حالا چه دختر باشه چه پسر و من لا یاریثو بحالین سبعتون هفت گروه هستن که به هیچ حال ارث نمیبرند برند هفت گروه هستن که به هیچ حال ارث نمیبرند برند العبد و مدبر این هم برده هست منطقه این آزادیش معلق هست به موت صاحبش مدبر اون غلامی رو میگن که سیدش کفته بعد از مرگ من آزادی پس مدبر اون برده هست که معلق هست آزادیش به مرگ سید و صاحبش این عرص نمیبره امه الولد عرص نمیبره اون کنیزی هست که سیدش با اون نزدیکی کرده جماد کرده و از اون حامله شده فرزند داره از اون پس اون ولد هم ارث نمی برد مکاتب ارث نمی مکاتب اونیه که با سیدش قرارداد آزادی شته در مقابل یک چیزی مثلا آقا من رو این, قدر چی... این قدر هزار میدم سید بهش گفته این قدر هزار بیار اینا رو که عدا کردی آزادی اینو میگن مکاتب مکاتب این هم ارس نمیبره قاتل قاتل ارس نمیبره یعنی از مقتول ارس نمیبره منظور نه که از هیچ کس و مرتد ارس نمیبره مرتد شده دیگه از پدر و مادر و از اون از کسی ارس نمیبره و اهل و اهل دو ملت هم نمیبرند از هم دیگر یعنی مسلمان و کافر فصلون، ببینید ما یک مسئله رو باید بدونیم حالا که این میراسبران و توضیح داد و گفت کی ارث میبره و کی ارث نمیبره گفت که چه افرادی در هیچ حالت از عرص ساقط نمیشن و گفت که چه افرادی اصلا ارث نمیبرن الان میخواد بگه که انسان از این میرس بران به یک جهت به دو گروه تقسیم بشن اونای که سهمشون در قرآن و حدیث مشخصه شریعت گفته این قرآن میبری یک دوم میبری یک سوم میبری یک چهارم میبری یک ششم میبری و گروهی که ن... اونا عصبه عنوان دارند اینا سهمیه مشخص ندارند بلکه بعد از این که ما سهمیه اونهایی که سهمشون در قرآن و سنت تعیین سهمشونو دادین هر چه مند عصبه بیبره پس به طریقی یا به جهتی میراس برای به دو دسته تقسیم میشن. عصبه ها دو زوی الفروز زوی الفروز اونهایی هستند که سهمهاشون مشخصند یک توفه یک چارم یک شیشم یک سفم دو ها یک هشتم اینها زوال فروزند شریعت گفته این قد میبری این قد میبری, میبری. میبری. گروهی دیگر بهشون میگن عصبه عصبه ها سهم مشخصی ندارن هرچی اضافه باقی موند بعد از این که زوال فروز سهمش رو برد به عصبه میدن فصل بعدی در مورد عصبات بگذاری دونو جدا بخورید و بعدی زوی الفروس هستن یعنی اول عصبار رو تا داده بعدا زوی الفروس اصلا.